ایران بازنگری در تاریخ قلم رو میانی. استاد جنیدی میگن برای ایرانیان از روزنه چشم بیگانگان به جهان نگریستن راه رستالی نیست زمان های دویتو چنگیز مولایی که استاد مستدلن زبان پارسی باستان هستند ایشون ها استاد دانشگاه تبلیزن که کتابش هم در دانشگاه به عنوان رفرنس معرفی میگرده می که کلمه اخیر مزوش آن پارته با یک اختلاف آوایی که یکی از وجوه افتراق زبان فارسی و مادی گونه دیگری از پارسا. کتاب راهنمای زبان فارسی باستان روی 201 شما هیچ جایی دونه نمیدونی که همچین جرعتی کسی داشته باشه راجع مثلا فلان سلسله از مصر یونان یا سنده، یه خط سند مثلا بین النهرین اینا بیان اجتهاد کنن این آقا اصلا فتوا صادر کرده دور همین آقای نولکه بعد از همه اینا شگفت آورتر کاریست که آقای الف کرده یک چیزای فهمیدا من جمله‌شو آوردم ولی عمره دست و پا برای مثال جمله‌شینه رافته به کلمه منده در واقع متمرکز شده به این کلمه بعد رفته دیده ا این هم تو اسمای مادی دیده میشه و هم در هزارای قطری دیده میشه حالا جمله را شما بیان کنید میگه زبان منده از اسناد و متون بغازکوی شناخته شده و متخصصان آن را جزء زبان اندوروپایی میدانند یعنی تا اینجا خوش اتهرام کرده حالا میاد جلوتر شیطند اگر چنین باشد دیگه شما که زبانشناس هستی که دارید چیز میکنی که پس احتمال رود. که منده هزاره سفه ارتباطی با منده اندروپایین داشته باشد. به نام ایزد یکتا یگان یک آفریدگار و یگان پروردگار هستی و هستی بخش با عرض سلام و ادب احترام خدمت شنوندگان گرامی و همراهان صدای امید خدمت شما دوستان گرامی هستیم با قسمت نهم برنامه ایران وچ. اول از همه صدای شما ما رو از صدای امید میشنوید از سایت اینترنتی www.sedaieomid.com. پول ارتباطی شما شنوندگان گرامی با همه برنامه‌های صدای امید و به خصوص برنامه ایران وچ ایمیل info@sedaieomid.com هستش. همچنین شماره پیامکی رو داریم که منتظر دریافت پیام ها و انتقادات و همچنین پیشنهادات و تذکرات شما هستیم با شماره 13 و تا قسمت 8 ما خب خدمت دوستان قول داده بودیم که همونطور که دوستان یا قسمت چهارم تا دوسه برنامه ما مقدمات رو تموم بکنیم وارد مسئله تاریخی بشیم ولی هنوز متاسفانه ما نتونستیم ولیش خب از یه طرف خوشبختانه چون که ما میخوایم از تمام منافذ عبور بکنیم و هیچ نکته غیر قابل گذشتی رو نداشته باشیم همچنین منتظر نقدهای منتقیدن گرامی به این برنامه هستیم هم بنده و هم بقیه کاشناسان این برنامه مشتاقانه منتظر این نقدها هستیم باز هم عرض می‌کنم آماده‌ایم پذیرای دوستان باشیم در خود استودیو و حتی به صورت تلفنی نقدهای دوستان رو بشنویم و در حد وسعمون پاسخگو باشیم. ما در قسمت های ششم و هفتم وارد بحث اسناد شدیم، اسناد و منابعی که در واقع کوچ آریایی ها که مبنای تاریخ نویسی و تاریخ نگاری در یک و نیم قرن اخیر بوده رو شروع کردیم که برای نقدشون، دوستان و کارشناسان برنامه اون منابع و اسنادی که در این مورد، وجود داره رو مرد نقد قرار دادن، اسناد و منابعی که در رد این نظریه ایده، نظریه که نمیشه که فرضیه، فرضیه که چیف نشده، این فرضیه بوده رو هم مرد نقد و نقادی قرار دادن. در این برنامه هم خب ما در برنامه هفتم خدمت خم دکتر نبودیم، خم دکتر هسانی نبودیم، میخوایم از ایشون شروع کنیم. و با توجه به در واقع مطالعاتی که در حوزه منابع هندی در این مورد دارن ازشون میخوان که ضمن سلام علیکم با از عزیز میفرمایند در مورد این منابع صحبت بکنن و اینکه در این منابع چه مابهزاهایی وجود داره در رد این نظریه و به اضافه اینکه کهن بودن حضور آریایی ها در فلات ایران از دید این منابع بله درود به شنوندگان گرامی برنامه من میخوام از اینجا آغاز بکنم که اصولاً اصلاً میخواستم یعنی میخوام اینو به عنوان شاید یک چیزی مثل درد دل بگم بله. که رد کردن یک فرضیه که خودش واقعاً اصلاً نه ابعاد زمانیش دقیقاً معلوم کی هست نه ابعاد مکانیش معلوم کجاست یعنی یک فرضیه که واقعاً ما تو برنامه های پیشین صحبت کردیم. خیلی پایه‌های استواری نداره که ما بیایم مثلا فلان پایش رو در نظر بگیریم و بخوایم اون رو بریزیم این خیلی کار سختیه یعنی میخوام شنوندگانمون بدونن که این فرضیه‌ای که واقعاً ابعاد زمانی و مکانی خیلی معلوم و مشخصی نداره خیلی دشواره که آدم بخواد ردش بکنه. ما مجبوریم این کارو بکنیم به خاطر اینکه کسایی که این فرضیه رو عنوان میکن رسانه دست اونست قدرت دست اونست و ما مجبوریم که در واقع در برابرشون بایستیم و نظر خودمون رو بگیم. وگرنه من فکر می کنم در یک دنیای ایدهال. اصلا من نمی بایست که بیام بشینم اینجا یک فرضیه ای که پایاه هاش معلوم نیست رو بخوام تلاش بکنم که ردش بکنم. در واقع اون فرضیه باید بیاد خودش رو به من ثابت بکنه. ماله. این اتفاق هنوز نیفتاده ولی خب چون قدرت اون سمت هستش ما مجبوریم این فرضیه ثابت نشده که خودش رو به ثابت نکرده رو ما تلاش بکنیم که ردش بکنیم. ولی خب حالا از این درد دل, دل که بگذریم من میخوام امروز درباره یک مپسی، در واقع میشه گفت یک مپس جغرافیایی هست توی ریگ ودا صحبت بکنم. یه بریک ودا که احتمالا شنونده هامون میدونن دیگه در واقع میشه گفتش که مجموعه متون ده تا کتاب هستش که به سانسکریت ودایی نوشته شده و جز متون خیلی پایه و کلیدی هست در پجروهش های درواقع حالا بگیم آریایی. میدونیم که حالا یکی از نظریات که داده میشه که خب از همه مشهورتر و محبوبتر هست در باره کوچ این هستش که بالاخره از جنوب سیبری کوچ اتفاق افتاده و حالا کسایی که به هند رفتن اومدن پایین و از سمت پنجاب رفتن در هند منتشر شدن پخش شدن اما یک نکته جالب اینه که جغرافی های ریگویدا دقیقا برعکس این موضوع رو میگه یعنی ما البته باید بیشتر با متن ریگویدا آشنا بشیم این ده تا کتاب ریگویدا در واقع به هر کتابش میگن یک مندالا یعنی ده تا مندالا داره باید ترتیب زمانی این مندالاها رو بدونیم بر اساس ترتیب زمانی این مندالاها اون جغرافیایی که این مندالاها میگن از دوره کوهن تا دوره جدیدتر اون رو ترسیم بکنیم تو ذهنمون. و ببینیم که ریگ ودا میگه که این مردم در واقع حالا ودایی که این ریگ ودا رو وداها رو در واقع پدید آوردن اینا چه منتشر شدن در اون حوزه جغرافیایی ماندالاها 10 تا هستن ولی ترتیب زمانیشون یک تا ده نیست ترتیب زمانیشون این چیزی است که من الان میخونم کهن ترینشون ماندالای هست و سه و هفت اینا از همه کهن بعد به ترتیب دیگه میاد جلو 4 دو 5 8 نه ده مندالای یک،, یک کمی دوران نوشته شدنش یک دوره طولانیه. یعنی توی از دوره میانه شروع میشه تا دوره جدید نوشته شده. نمیتونیم توی وسط یکی از این عددها بذاریمش. حالا توی بحث امروز هم خیلی باش کاری نداریم. بر اساس جغرافیایی که توی این ده کتاب آمده اگه بخوایم خیلی خلاصه و مختصر مفیدش کنیم این جغرافیا رو در مندالای 6 که کوهند ترین مندالا هست این مردمی که به مردم ودایی حالا اسمشون رو میذارید مردم ودایی معروفن اینا در شرق رودخانه سر دارن زندگی میکنن یعنی یه جایی نزدیک هاریانا و استان اوتر پرادش تو هند میشه شمال شرقی هند و شمال هند مثلا اونجا زندگی میکنن توی مندالای سه و هفت این اقوام دارن میان به سمت قرب و در نهایت گفته میشه که در در دوران جدیدتر میان تا میرسن به پنجاب یعنی سیر کوچ برعکس دقیقا اون فرضیه که از پنجاب پخش شدن به سمت شرقاً چون که منطقا من اینو میگه میگه اگه از سمت شمال سم سیبری آسیای میانه بیان تو فلات ایران بعد برن تو پنجاب رد بشن از سمت غرب به شرق باید بلد. باشه ولی خب تو این که شما ولی ویدا میگه از شرق, می از شرق به غرب اومدن بعد توی ماندالاهای جدیدتر دیگه 8 و 9 و 10 اینا اینا رسیدن به جنوب شرقی افغانستان اونجا ها این اقوام رسیدن به اونجا دیگه نکته باز جالبتر از این مپس که معلان گفتم این برمیگرده به های هندی حالا شما این رو بذارید کنار ما میایم ببینیم که ایرانی‌ها کجا هستن در ریگ ودا نام گروه های ایرانی در ریگ نام یه سری از اقوام ایرانی اومده کلا این اقوام که به اقوام ایرانی شناخته میشن الان همه دانشمندان باور بر این دارن که اینا اقوام ایرانی هستن حالا از نام هاشون معلومه میخونیم اینا آنو نامشون هست یعنی اقوام آنو اقوامی هستن که در ریگویدا ودا معادل همون ایرانیان که گروه های خاص دارن مثلا پرشوه ها هستن که خب اینو دیگه من نمیگم همه میگن که پرشوه ها همون پارسان باز گروه دیگه دارین پارسوه که قاعدتا همون پارت ها یا باز پارس ها باید باشن مثلا یه گروهی داریم به هلانه به هلانه رو میگن کسایی که سانسکویتیست ها میگن که اعتمالا بلوچه ها باید باشن اقوام پکتر رو داریم همون پاختون ها هستن حالا اینا همون باتا آره. آره. این گروه ها اینا زیرگروه زیر های اقوام آنو هستن همون ایرانی های ریگویدا حالا مندالای هفت گفتیم که ترتبه ها 6 سه هفت گفتیم این سه تا کوهند مندالای هفت که جز کانترین ها هستش از این اقوام آنو نام برده و یه داستانی تعریف میکنه میگه که یک شاهی بود به اسم سوداس یا سوداش و این پادشاه کسی بود که تصمیم گرفتش که به سمت غرب بیاد و این شخص شخصی بوده که توی یک جنگی با اقوام آنو شرکت داشته خوام خب... خب دکتر در واقع تو همون متن ریگ ودا هم اصل بر این هستش که این اقوام که به ایران میان از خود هند میان ایران ببینید حالا الان این داستان جنگ رو که بگم ریگ ودا این رو نمیگه ریگ ودا این اقوام رو اونجا فرض کرده یعنی نه اونجا هستن تو حوالی پنجاب شرق ایران درسته. و اونجا رو واقعا مرز میدونه می اونجا سابقه ای نمیگه نمیگه اینا از کجا اومدن نه من تا اونجایی که من میدونم حالا باز میتونم در این زمینه بیشتر پژوهش بکنم یا دوستان اگه میدونن بگن ولی چیزی نگفته که اینا از جای اومدن اونجا اینا اونجا هستن و این اقوام ودای میرم باشون میجن دقیقا. ده. تا اونجایی که من میدونم بله داستان این جنگ اینه که یک این جنگ هست به نام جنگ ده پادشاه معروفه حوالی اون چیزی که امروز بهش میگیم پنجاب اتفاق میفته داشراج نه ده راجه داشر یعنی ده, ده جنگ ده پادشاه است یکی از پادشاهایی که توی این جنگ هست که پادشاهای ودایی همون سوداس هست و کسایی که طرف مقابل هستن اقوام آنو هستن همین پرشواها و پارتواها اینا هستن جنگ حدود اونجوری که حالا از نظر زبان شناسی و از نظر دیرین شناسی همین ماندالای هفت و اینا میشه تشخیص داد حدود 2000 قبل از میلاد اتفاق افتاده یعنی 2000 قبل از میلاد ریگ به ما میگه که پرشوه ها پارسوه ها پشتون ها بلوچ ها اینا توی حوالی پنجاب و در قرب زندگی میکنن اقوام ودایی دارند به سمت قرب گسترش پیدا میکنن و میان با اینا می جنگن طبق ریگ ودا پیروز میشن و منطقه هم حالا میگیرن ظاهرن بله. خاندکتر دکتر خواهی میکنم آیا تلاشی شبیه اون تلاشی که برای کشف میدانی جنگ تروها صورت گرفت برای کشف میدانی همچین جنگ هایی صورت گرفته تو هندوستان و ایران واقعا این اه... درد دل خیلی هاست که اصلا این رو من الان دارم برای شما از ریگ ودا مطلب میخونم اینو ممکنه خیلی خیلیا بشنون بگن خب یه قصه است چون بوده داره قصه تعریف میکنه اسطوره داره تعریف میکنه داستان خوب یاد دا اودیسه هم یه زمان داستان بود اسطوره بود مشکل ما دقیقاً همین جاست من توی یه برنامه دیگه هم گفتم گفتم بابا این اسطوره ها رو شاهنامه رو اینا رو جدی بگیریم اینا جدی گرفته نمیشه دیگه یعنی الان من میدونم پاسخ به این داستانی که من الان تعریف کردم چیست این قصه هست داستان افثانه است دستوره تمام شد و رفت یعنی من همه الان پاسخ خودم میدونم ولی خب از دید من اینا قصه و داستان علکی نیست اینا همشون پای و اساس داره. یعنی ریگودا نمیاد اینجوری با جزئیات نام اقوام ایرانی رو در قرب هندوستان بیاره و بگه ما رفتیم با اینا جنگیدیم و مثلا سر قلم رو. بعد حالا شما در نظر بگیرید که این جنگی که اتفاق میفته توی این منطقه سر قلم رو، این اقوام چه ریشه و پایهی باید توی اون منطقه داشته باشند؟ که با یک سری یه گروه دیگه ای که میخوان بیان اونجا اون منطقه رو بگیرن باید مبارزه بکنن جنگ به این مهمی صورت بگیره که ثبت بشه در ریگ ودا ببینید بلد. هر چیز جزئی در اون دوره با اون امکانات ثبت نمیشوده باید یک اتفاق خیلی مهم و بزرگ بوده باشه که ثبت بشه دیگه. حالا شما از این سو اقوام ایرانی رو در اسم مادها هم راستی اومده منطور چون تو پرانه ها اومده من نگفتم پرانه های سری متنی هستن از زمان نگارششون از حدودای مثلا قرن چهار پیش از میلاد تا هزار میلادی ولی محتواشون کهانتر از این هستش نام مادها اومده در اون هم دقیقا منطقه زندگیشون همون حوالی پنجاب امروزه بر اساس متون هندی ولی خب حالا ما بالاخره اسنادی داریم که همین اقوام در آسیه غربی هم هستن دیگه مات ها و پارس ها و اینا بلده بلده که فکر میکنم بقیه گفتن اینا رو حالا شما دیگه یک نقشه بذارین جلوتون توی ذهنتون اون سیبری و جنوب سیبری که محل در واقع پایین اومدن آریایی ها هست طبق نظریه کوچ اون رو در نظر بگیرید و چاره سال پیش و امکاناتش رو در نظر بگیرید بعد از این ورد در نظر بگیرید که این اقوام نامشون در متون هندی اومده در حوالی پنجاب و افغانستان و اون مناطق بعد از اون سو در نظر بگیرید که این اقوام در آسیه غربی هم هستند و ببینید واقعا این اینجا جور در نمیاد این موضوع یعنی بله با جور در نمیاد بالاخره باید یک پاسخی به این داده بشه که این حوزه قلم قلمرو میانی و این اقوام که نامشون در سراسر این حوزه از شرق از رودخانه سراسواتی هست تا غرب اینا چجوری باید به این قضیه پاسخ داد که دقیقا چهار هزار سال پیش هم این جاها هستن چهار هزار سال پیش ما میبینیم مثلا توی کتیبه هیتی در قرب نام مثلا این درم اومده بعد اینور در شرق ریگودا داره این جنگ رو توصیف میکنه از اون سو هم آریایی ها مثلا جنوب سیبرین هنوز بله جور در سال 500 تو منطقه هستن اونم شرقش می جنگن برای حفظ سرزمین خودشون یعنی این که بالاخره چند هزار سال اونجا زندگی کردن که اونجا رو وطن خودشون میدونن که برای تمامیت ارزی اونجا دن می جنگن و از یه طرف خب مثلا اسناد میانرودانی هم ما داریم میو می آسیایی هم اینو می بینیم اقوام هیتی ها. در واقع در زبانی هیتی ها هم در این چیززار رو می بینیم و این با عغ در خیلی متشکر می دکتر از ورمای شدتون جناباقا ایران مهر گرامی مطالب خیلی ارزشمندی رو خوانم دکتر فرمودند و اون سوال رو بازم من خیلی دوست دارم نظر شمارم بدونم تکرار بکنم که در واقع چرا چرا این پجوهش هایی که در مورد مثلا جنگ رو با سورایی کرد اما این جنگ ها سورایی هست نگرفت ایران مهر فرمایش رو میشنمیم خواهش میکنم درود به شهرن مندگان گرامی خانم دکتر خب من اون نشست که گفتم حضوریشون در این نشست موهبته حالا شنوندگان کم کم دارن متوجه میشن من بله. چی ارز میکنم درباره باری نشست هشت دو تا نکتر رو باید بگم منطقه پیش از این دو تا رو بگم چون پاسخ پرسش جنابالی رو ارز کنم نه تو تاریخ استوره ما هیچ پجوهشی صورت نگرفته شما یک نمونهشو بگین بگین فلان استور فلان روایت از تاریخ ما هست و باستانشناسای ما رفتن اینو به صورت یک بسته مطالعاتی در و رفتن دنبالش سراغش اسنادش سرزمینش جغرافیاش و دنبالش برن توهین نباشه بنده یک پژوهشگر ساده هم یه یک ای اما به عنوان یک شهروند ایرانی بنده نه شکم اما صابون زدم نه امیدی بستم به این جامعه باستان شناسی و به این تاریخدان و به این داستانهایی که امروز داریم آدمایی محترم میان اما سوادشون همین انداز است دیگه یعنی از این بیشتر من به عنوان یک شهروند ساده ایرانی از این انتظار ندارم. قبل از شروع پرمایشتون حالا خب موقع پخش این برنامه که داریم در وقت شاید دو ثفتگی پخش بشه. امروز که داره ضبط میشه. 25 خرداد هست فردا با. 26 خرداد توی مرکز دائره طن بزرگ اسلامی قرار یک دوره 20 جلدی تاریخ ایران رو نمایی بشه یه دوره 20 جلدی که حدود یک میلیون 800 هزار تومان برای هر دوره قیمت گذاشتن و حدود 170 نفر پژوهشگر و استاد دانشگاه و رو این کار کردند و نزدیک حدود 15 تا 20 سال حالا البته درست شاید نگارشش تو این چند سال اخیر باشه ولی برای پجوهش ها و مشاوره ها و مسائل مختلف هست که 20 سال روی این کار شده و خیلی برای من عجیب هستش که هنوز که هنوزه همین تاریخ نویسه بر اساس همین سیاق تاریخ نویسی یک و نیم قرن اخیر هستش و تغییری هم توش صورت نگرفته و واقعا اصلا برای من خود سواله که چه فایده‌ای داره که اصلا بر اساس یک فرضیه ای یه همچین مجموعه عظیمی با یه بودجه بسیار عظیمتر نگاشته میشه ولی در این حال هیچ چیزی به دانسته ها و چیزی به دانش تاریخ ما اضافه نمیکنه. واسخای می‌کونم میدونم فرمودید شما رو میشه این چیزی هم شما فرمودین که ما تلاش میکنیم هیچ نقطه ای رو ناگفته بذاریم والا من هر 20 تا برگه آچار میارم اینجا چکیده حرفامو میارم یه ورخشم نمیتونم بگم ما کلیاتی از اینا رو تو این نشستم میگیم میایم و میریم و بلکه که یک تحریکی بشه این جوانای ما برن پژوهش کنن اسناد رو بخونن و اینقدر این حالت می دونید که نسبت به این تاریخ موجود هست دقیقا مثل تعبد مذهبیه یعنی فرض بفرمایید پیغمبر گفت که آقا به اینا میگیم شما چه جوری بد پرسودیم میگه از پدران میاد گرفتیم از کجا پدرانات پدرانات پدران میاد گرفت این تعبدی که شما نسبت به این میگیم کی گفته میگه هرتفلد گفته. خب باعث گفته و یکی میگه گرشمن گفته و یکی میگه میری بایس گفته خب این این حالت تعبّد و تقدسی که نسبت به این تاریخ دارن واقعا خیلی کارو سخت کرد در این حال برای که بریم سر اصل مطلب خانم دکتر خب در دانشگاه پونای هند هم ایشون دوره دکتری رو به غیر از دانشگاه مونترال گذروندن کاملا مبسوط خب همون اندازی که زمان بود فرمودن برای در ریگ ودا که حالا کلیتش این بحثی که ما ارز میکنم مثلا این چیز دو عدود 3400 سال پیش از جمعیت های ایرانی با همون نام پرسوه یا پرشوه نام برده همونجا که فرمودن در ماندالای ششم از رخدادهای تاریخی که در قرب سرزمین یعنی در ارخوزی و زرنگ جنگ دیوداسه با کسایی به نام پرشیه کردن کاملا اونجا نام برده شده در سرودی برای سرسفتی همون رو که در شهر اونجاست نام جمعیت های پرسو یا پرشو که در کنار دیگر جمعیت های خاوری ایران قرار داشتن نام برده شده خب اون کامل خانم دکتر گفتن من چون میخوام وارد حالا تا جایی که وقت من هست میخوام وارد این اسناد بشم من یک دو نکته رو بگم من در بخش هشتم پایونش من از شما خواستم اجازه بگیرم یک چند ثانیه چیزی بگم چون وقت گذشته بود برنامه هشتم به پایان رسید من اون نکته الان میگم بنده چون سندهای مربوط به هزارم دوم جلوم بود و اون چیزی که من درباره جنگ بیتانبان گفتم اون از حافظم داشتم کمک میگرفتم من یک نام رو اشتباه گفتم اون چه که من در برنامه هشتم گفتم تیکلت بل اثر سوم اون در واقع سلم اثر سوم بوده تیکلت بل اثر سوم صد سال بعد از سلم اثر شاه آشور بوده و اون چون که ما گفتیم اون کارا رو یعنی اون گزارش اون جنگ 835 پیش از میلاد رو سلم ان اثر سوم آشوری گفته حالا نام ها این جالبه سلم ان اثر حالا اون اینا نام های آینی این شاه است چون قیل از نام خودشون نامه آینی هم داشتن سلم همون سلم ایرانیه ایرانی. که از سعیر هم گرفته شده این کوچه سلم ها به سمت باختره دیگه بله، نوادگان سلم هستن. این بزارن. نامش اینجا ما میبینیم یا اونی که من به اشتباه نشسه گذاشته گفتم تیکلاد بلسر، اون خیلی نامش خیلی جالبه. حالا اون اثر پایینیش که کاملاً با نامهای به حساب داخل فلات و ایرانی همخانی داره. حالا ما شاید یه جا فرصت بشه اون اثر رو بگیم به چه است که همون آسور یا آشوره و در خیلی ربط عجیبی داره. یعنی با اهوره ایرانی یکیه. با رع مصری یکیه. با رعای کرتی و آرگوسی هم یکیه اینا همه‌شون یک ریشه داره این تیکلت بل اثر که من اونجا اشتوارس کرده بودم این تیکلت نام اکدی رود دجلس این نام سومریش دیگنس به معنای توندوتیز که امروز در لاتین به صورت تاییر باقی مونده در فارسی به صورت تیغ باقی مونده اکدی شده تیکلت فارسی باستانش فارسی باستانش تیگره در یونانی میگن تیگرس و اون تیگر معربش میشه به سبب دیگره دیگره یا دجله همین روده دجله است حالا در این حال اسنادی که ما خوندیم اونجا اشاره کردیم در همین سند سلمان اثر نام برده که آقا از آمادای و پارسوماش باورمندان به فرزی کوچ میگن که خب این آمادای همون ماده پارسوماش پارس. همون پارس خب ما شکی داریم نداریم منتها ما میگیم در کنار این اسناد دیگه هم هست که پرخشه هم همون پارسه پرشو هم همون پارسه مدای هم همون ماده مده هم همون ماده این نمیشه که هرچی شما ترجمه کنین درسته بعد هر که تو سناد دیگه هست چون با زمانی که شما گفتین جور در نمیاد اینا همه رو به اصطلاح بذارین کنار از خوندن سند که من نشست پیشم گفتم نمیدونم چقدر دوست داریم براتون در این بار من سند بخونم حالا چند تا سند هم جو اتفاقی توی اینا نگاه می دیگه مثلا ما از شولگینم بردیم یکی از فرمان دودمان سوم اور ایشون در یکی از سنداش که مربوط به بیش از 4000 سال پیشه از سرزمین های مده گوتیوم و زیمودار نام میبره در کنار هم در متنی که شوسین یکی دیگه از شاه همون دودمان در هزار سال پیش در سندش آورده از لشکرکشی خودش به شهرهای پهنه زاگروس نام میبره و از ذره نام میبره که در مده به قنیمت گرفته در زاگروس مده. حالا باورمندانه کوش میگم نه همون آمادایی که ما پیدا کردیم اونه این مده ها این همه چیز دیگه است. حالا ادزارت خاورشناس آلمانی مده رو سرزمین معنا کرده مده مده رو سرزمین ها معنی کرده یعنی گفته یه مده میشه سرزمین دو تا مده میشه سرزمین, سرزمین. حالا اشکال نداره ما یک سند میخونیم از شاه پورسین از همین دودمان ببینین گفته که شاه پورسین بیتوم ربیوم یبرو مده و خوخنوری را ویران ساخت خب حالا بیاین مده رو وسط جمله سرزمین معلن کنیم ببینیم چی میشه میشه شاه پورسین بیتوم ربیوم یبرو سرزمین ها و خوخنوری را ویران ساخت خیلی مسقه دست بهش یه دارن که خود سیغل بخوره سیغل دیگه؟ در سند دیگه از همین پورسین یا امرسین در زاگوس آمده که در پیوند با نام مده او از کیمش، اوربیلوم یا همین اربیل، شاشروم، بیتوم کی، یبروکی، مده مده بی و خوخ نوریکی که همگی در خاور سومر بودن نام برده همین گتمایی کمی کلمه یبرود هم باقی یبروکه در سوریه بله اینا جالبه وقتی که ببینید اینا تو اسنادشون نام برن سرزمین های پراکنده دور از همون نام نمیبرن به ترتیب سرزمین های کنار همون نام میبرن دقیقاً حالا جالبه مثلا روی نام ها هم این نام‌ها همینایی که اینقدر میگن ادعاشون میشه آقا همین سومریا دیگران بهشون میگفتن سومر اینا خودشون به خودشون میگفتن کلم کلم مثلا خودشون بهشون میگفتن مثلا ایلام ها به خودشون میگفتن اوتامتی دیگرام یعنی میان دنیا بهشون میگفتن ایلامی در سند دیگه‌ای از سال هفتم فرمان روایی شوسین از همین فرمان روایی دودمان سوم اور نام مده همراه منطقه به نام زاب شالیکی این کی ته چیزیه که معنای نام خاص به اونا میده که در کوهستان های لرستانه به چشم میخوره یعنی مده در کنار زاب شالیکی در کوهستان های لرستان میاد در نامه ای از ایش اره به ایبیسین فرمان دودمان سوم اور حالا خوشبختانی سندارو اونا با خط میخی اون موقع نوشتن اینا دیگه ما رو سرینان نمیتونن تکبیر کنن نخست از تازش آموریان به مده و سپس کلم سخن رفته یعنی آموری ها که از شرق اومدن اول مده رو گرفتن بعد رسیدن به کلم یا سومر هنگامی که امیدی تنه نهمین شاه دودمان یکم بابل در 3700 سال پیش شهر درو در بخش جنوبی مادستان رو گشود بر شخصی به نام عرخب چیره شد و او را لو مده نامید به معنای فرمانروای ماد لو مده خودش تو سندش گفته من لو مده رو شکست دادم حالا مثلا اینجا بیایم مده مثلا سرزمین اصلا اک... دکتر باور کنین ما گرد یعنی این سنده که می‌بینیم گریامو می‌گیره می چرا صدامو به جایی نمی‌رسه بله خب حالا بریم اونور بر دنیا بله در پیون با نخستین اشاره هایی که به مات‌ها در منابع خاور نزدیک شده میتون از خاننگان خانم اندگانی گرامی اون مسئله که آقایان مه فرما هستند اسنادی بوده که فعلا تو قرب فلات ایران بوده الان به سمت شرقه فلاتی. نه نه الان میریم به مصر مصر بله رو خانم دکتر فرمودن بله بله تخصصشون هم هست حالا اسنادی که ما داریم میگیم من بیشتر چون پجوهشام در دنباله پجوهش دوستان تو این منطقه است جانست. میان رودان حالا اومدیم به مصر میتوان به سرزمینی به نام مزا یا مزه یا مدای اشاره کرد به همین نام در مده های دودمان ششم فرعون ها یعنی دوران فرمانروایی پپی یکم در 4250 سال پیش و سپس در دودمان دوازدهم یعنی 3900 سال پیش اشاره کرد حالا میگن که وال با معروف باز رفت مثلا مصر چه ربطی به اینجا داره یادتون باشه من یک نکته دیگه اشاره کردم یک اشتباه دیگه هم همینجا تصحیح کنم چون این برنامه ضبط میشه به صورت زنده نیست من داشتم چند روز پیش برنامه سوم ایرانویج رو گوش میکردم من اونجا نام بردم از رامسس که شاهزاده رو از بختان یا بلخ اینا ازدواج کرد باهاش و اون رو رفتن از بلخ آوردم من اون رو رمسس سوم عنوان کرده بودم چون سند جلوم نبود افتادم نگاه کردم دیدم اون رمسس دومه. دومه همون رامسس معروف بله رامس خدمت اون زمانه که در واقع نسبت دادیمش که زمان حضرت موسی بله بله ما اون همزمان بوده بله. حال این حالا به فیروزی 13 تا رمسس دیگه حالا من یه دون اشتباه کردم رمسس دوم سوم میگن چه ربطی داره خب اون ربطش دیگه دارین میبینین که ما تو پاینامه آی فیروزی بودیم آی دکتر زنیکوب میگفت که ایچاری همه سند از مصر را بی ربط به موضوع مادها آی دکتر روزبه زنیکوب بله بی, بی, بی ربط به موضوع مادها در صورت که ما اینجا میتونیم تا سند برای شما بخونیم که چقدر ربط داره اینا شماها مناطق و سرزمین ها رو جدای از هم میبینین اما ما داریم صحبت میکنیم که این قلم روی میانی کاملا با هم مرتبطن و اصلا همون چیزی که تو ذهن شماست نبوده همگونی تاریخ ذکر نام قوم مزه در مصر یعنی 4300 سال پیش که بعد صحبت میکنیم چه جوری به مصر رفتن و نام سرزمین مده در های سومری که در متن فرمان روای شهر لگش در 4150 سال پیش اومده نشون میده که این گسترش همزمان اینا به سمت باختر یک حالات همزمانی رو داشته. اینا به سمت باختر داشتن پیش میرفتن یک مغالطه ای که میکنن اینا میان جدا میکنن دیگه ولی که اون داستانشون درست در بیاد پارت و پارس و مات بعد میگن خیلی خب قبلا بومی ها اینجا بودن شامل گوتی ها و کاسی ها و اینا بعدن اونای دیگه اومدن و اینا رو شروع میکنن به فرافکنی. اما در این حال ما از فرض بفرمایید در این مثال از گوتی ها هم زیاد سند هست که همین سنده میان رودانی و مصری ازشون نام برده شده همون تیکلت بل اثر سوم شای آشور که من نام بردم 2750 سال پیش در گزارشش از شهری به نام کوده یا کته یا گوته نام میبره که خودش اونو از اورارتو جدا کرده بوده ببینید نام مشابهه جغرافیا هم بومنگاری هم نزدیک اورارتوه سرزمین گوتیان همون رامسس دومی که نام بردیم در میان دولت هایی که هم پیمان هیتی بودن در جنگ قادش رامسستاش باشون می جنگید باز از سرزمینی به نام گودی یا کودی نام میبره که همین احتمالا گوتی ها بودن من چون زیاد اینا اگه اجازه بدین حالا بله بنده دیگه بم. ادامه ندم دوستان بله. دیگه من باز من یه نفس میتونم بگم نه, خواهی. نه خواهیش که سند و در واقع مطلب که زیاد هستش. جناب آقای فیروزی با توجه به پژوهش شما خصوصا در پایان نامه‌ای که داشتید و در واقع های مادی رو شما به کهن‌تر بردید از به حالا در به موقعش هم میرسیم و خیلی از فرماشد شما مونج استفاده خواهیم کرد در رابطه با همین مسئله اسناد در چه در میان رودان چه در میان هیتی ها گوتی ها و همچنین از به که در اسناد مصری ها در رابطه با بحث ما در رابطه با بحث رد نظریه کوچه معروف چه چیزی آورده حضرت از خدمتتون ببینید الان آیرا مهر خیلی از اسناد رو خیلی کلی نام بردم من یه چیز جاله تو بررسی ها بهش برخورد کردم گفتم بیام یه جدول طراحی کنم این نمونه هایی که اینا به رسمیت میشناسن برای اینکه این نمونه پارسا هست اون نمونه چه میدونم هست اون نمونه مانها هستن اینا رو بذارم کنار هم بعد اون چیزایی که به نظر بنده یا آقای ایرانمر یا هر کسی دیگه میاد که اینها همون ها اصلا قدیمی ترن بذارم کنار هم ببینم کلی قضیه چقدر با هم تفاوت داره خب ببینید من دیدم در کل قضیه این مهاجرت دیر هنگام آریایی ها به قبل فلات ایران سه چارت اساس. یکی که این را میگن کلمه پرسوه در سنت های آشوری قرن نهم که شروع شده این پارسا هستن بعد از ارمنی ها با دو لفظ او رو ادری و اورارتون هم برده شده که این ارمنی ها هستن که مایی تو بیستون هم داریم که اون تو بابلیش نمیشه ارارتون معادله پارس این نشون ارمینه که این نشون روی دقیین یکیسته بعد میان مین که خیلی خب ماناها هم با چهار لفظ مانا و مانا وماناش و مونا اینام در های آشوری اعزاره یک کو اینا ماناهایی از اقوام هنندروپایی منتر است و خب این ها اولیاش بوده که آماده مادای ماتایم ماتا است بعد من, من خیلی خوب گفتم حالا بر اساس همین متود یه باچه آشوری ماده بشه این سرزمین کنار هم دیده و چیده و تفسیرشون کرده حالا ببینم پادشاهان قدیمتا وقتی لشکر کشیده کردن به چیزی دیگه بر نخوردن یا به بر نخوردن دیدم این اسامی وجود داره یه اسمی دادن برای حالت مونی یا مونا در همون نقطه جغرافیایی که اینا لشکر کشیده بودن آشوری‌ها در شمال شرقشون یا به شرقشون اومدن و با مانه ها برخورد کردن با لفظ مانا پادشاهی‌ها به مونه‌ها برخورد کرده به به مونی برخورد کرده بعد دیدم خب اورارتو یا ارمینه دیدم در سند اکدی ارمنی وجود داره بعد دیدم در قضیه ریسا میخايم بشیم وارد کتیبه معروف سارگون اکدی بشیم اونجا یک اسمی وجود داره در حقیقت سه تا اسم وجود داره که دو تاشو اعتراف کردن و یکیشو تن ندادن در کتیبه سارگون آشوری که قرن هشت پیش از میلاد حکومت میکرده خب اسم شهری هست با اسم یکی از شهرهایی که پاچهان های محلی مادی بر آنها حکومت میکنن اسم این شهر اسم یک واژه هندورپویس مثل کارزینو که اینو دیگه قویشون در کتاب های مختلفشون گفتن این یک سکونتگاه مادی است. این با اسم مادی در حکومت میکنه اسم هندورپاید بهش حکومت می‌کنن. اسم آریایی. اینا چرا بعد این اسم در کتیبه سارگون اکدی باشه؟ چرا بعد در 4200 سال پیش این اسم دهکده سکونتگاه یا شهر هر چی بوده هر وعتی بوده از ماتا در کتیبه سارگون اکدی باشه و از اون بدتر میاد شهر همدی رو و مردمانش میگه اینا سنت دفع کردن نمیشناسن تطفین نمیشناسن آتش آنها رو میبلد این قیقا یک سنت تطفینی از مرده ها شدن اروپایی پیش از ارتشی رو توضیح میده. این شما بین یونانی ها میدیدید دردون آکی ایشون تازه بین هندی ها می بین هیتیایی هایی که زبونشون هندو اروپایی بوده هم میدیدیم چرا باید برای یک مردم کرزینه یه سنت هندو اروپایی کوهند وجود داشته باشه و اسم مادی در هزاره سوم پیش از میلاد. این جواش مشخصه ماتا با همون اسم و با همون شهر و با همون سنن در اون نقطه وجود داشتن وجود داشتن و زندگی میکردن آگه بهت سیاسی داشتن و سه تا اسم هندو اروپایی هم در کناری میاره. ولی آره اسماشم سخته گفتنم نداره ولی تا اسم هندو اروپایی در سال سارگونه که در هزاره برای منطقه اطراف به خود شکار میکنه اگر این اروپایی ها به فلاحات ایران در هزاره نیومده بودن این اسامی چی کار میکنه؟ این نکات خیلی مهم است که اینا دیگه سنده ج... شاخص هستن اگر من در کتاب هرویت سیدم که برخورده و به این از یک کرزینه و میگفتش که گریسون اینو من خودم گیت شدم گریسون این توضیح کرده که احتمال این رونویسی به دوران آشوری است و اسم کرزینه دوباره اومده و اینا این کرزینه و به دوران سوگونی اکدی باشه خب آخه مرد حسابی اینا پاشم بیان رونویسی رو بخوان در هزار اول انجام بدن بعد اسم مصر رو که به اون عظمت و شهرت هست به همون اسم كهنیش نگه دارم به روزش نکنن به حالت آشوریش بعد یه در مات به روزش کنن توجیه نتونست درفت کنه دیگه به این به این بند داده و این دار هست بعد سرزمین هایی دیگر فلات ایران هم شما در این موتون پیدا می کنین یه سرزمینی هست در کتیبه داروشم شما این می بینید در کتیبه شاپور اول هم این می بینید مثل مکوران در کتیبه شاپور و مکه یا مدشیه در کتیبه های خامنشی. مگن کتیبه های اکدی و این ها سومد خب یک جمعیتی که در فلات ایران زندگی میکرده و این دیگه باید هندو اروپایی شده باید شده در فلات ایران در هز... اسمش دیگه کوران یا مکه این اسم دیگه پارسی شده است این جمعیت چرا؟ بسیت جمعیت های دیگه خورده نشده بسیت این همی که هندو اروپایی آریه از بالا اومده همه خوردن خوردند ایشکی اسمی هشکی اسم نمونده و پارسایی اسمشون را میخ کردن به فلات. این اسم مونده غیر از این هست که در کنار مونه و ماناها و ارمنی ها و دیگران، در واقع ها یا مکرانی هایی که این می یکی از جمعیت هندو اروپایی بودن از قدیم بودند در همون نقطه شون تا به دوران شاپوری کن از این مطالب زیاد هست ببینید مثلا این حالا اصلا میان رودانی هست که یه موردش رو اول انتخاب کردم این به تو کتیبه های، نرمسین هم ببینید اونجا به همین حالت میشه موچه این اداها رو گرفت یعنی اصلا نرمسین کتیبه داره که میاد میگه که من لشکر کشیدم به چند سخت سرزمین و ارمنو که ارمنیو الان دست گوشونه که این کرمن ارمن هم ارمنستانه اینا یعنی بیدارتر از من به رحسومو کیکو کیک رو گرفته خب دوباره شما که ارمنه که به رحسوم میبینید این عین هم حالتی که مثلا اوراتو بغل پرسو بوده اینا یکی که دو تا نیستن که آدم بخواد ازشون بگذره یا شواطه شواططای یه جادوجا جا نیست شواطط فقط آواایی نیست شواطط جغرافیاییه هی قرار نیست که یه زبانشناس وارد این بریم بگه از نظر زبانشناسی بعد قیاس کنید آقا ما جغرافیای یکی است مگر کسایی گفتن پرسو و پارسه است اینا زبانشناس هیچکدوم زبانشناس نبوده همه باستانشناس بوده <تصفيق> گیش می اینا همه زبانشناس نبونه نه اولین کسایی که ادعا کردن این سندهای میارودا نیست است که در دست داریم اگر بخوایم وارد مخصندت ارمنی، سوریانی یا یونانی بشیم همخانی های با همین سندهای زیرخاکی می ما پیدا می کنیم که انگاه مثلا یکی نشسته این رو باید مهندسی کرده بجید اینقدر دقیق در بیاد برای نمونه سندهای های یونانی میگم ما چندین دوره مادی قبل از این ماتای شده امروزی داریم ولی ما کلی برای ما کلی میگم برای شده جلسات بعدی. یکی از این دورها که اولین دور است از نظر سنت یونانی مثل دیو دور که به نوشته کت زیاه نوشته اولین دوره ما میخواین تو این نوشته های یونانی جمع ببیم عدلششون بریم بالا میخوره به همین 4200 خورده ای پیش این منطبق داره به صنعه بین و که دارن از چی صحبت میکنه از وجود ماتا بعد یکی از اینا خیلی برخورم جالب هست واقعات با شده باشه در یه جور مثلا این قایدی که بیکار بوده باشه در اسکندریه اینو به مهندسی کنه واس ایرانی‌ها عمره سند متأخر به دوره آشوری باز نویسی کرده از یک سند اکدی اومده گفته به دوران نرمسین ما تو حمله کردیم به میان رودان و اینا درگیر شده. و ویرانی‌ها رخ داده حالا ریزشون من میتونم کتیبه رو بعداً بخونم بهتون الان کلیتش این هست خب دور نرمسین ما می‌دیم 4200 خورده هروز سال پیشه و دقیقش هم باز میشه بعداً گفت حدوده تا تا بله خیلی خوب این کتیبه وجود داره بعد سندهای یونانی که که جمع میبندین میبینید که وقتی به این نقطه میرسه همین حدود نرمسین می دورانی که ماتاب به بین النهرین حمله کردن خب چرا باید این همخانی بنیسن لیگ در یونان نوشته شده اونم دور متأخر با این سند میار رودانی که خودش رو از رونوشت رو اکدی اینقدر همخوانی داشته باشه اینکام مثلا دوربین و بودن از اون تاریخینا رو ضبط کردن و ثبت کردن بعد حالا منتشرم کردن این تصادفی نخواهد بود مگر این اتفاق واقعا با همین حوویت ها افتاده باشه ثبت شده باشه و بعد از اینا رونویسی شده باشه یعنی مات باید وجود داشته باشن به دوران نرمسین حمله کرده باشن تا این بره برند و نوشته باشه ما از این موارد زیاد داریم ساموندهیش میشه که در قالب پایان نامه و اینا رو رو ریز به ریز بله خیلی متشکریم جناب آقای فیوزی ما متأسفانه ادامه فرماشه ما تو این قسمت رو نمیتونیم چون فرصت برنامه روبه پایان هستش شنوندگان گرامی خیلی متشکریم از توجهتون و حوصلتون به این برنامه باز هم منتظر نقدها و تذکرات و پیشنهادات و پیشنهادات و سازنده و انتقادات شما هستیم شما رو تا آغاز قسمت دهم ده این برنامه و خداوند متعال میزبانی خدا خدایا رو نگهدار